فصل سوم. آنگاه عیسی به مردم و شاگردان خود گفت چون ملایان و فریسیان بر کرسی موسی نشستند شما باید به هر آنها میگویند گوش دهید و مطابق آن عمل نمایید اما از اعمال آنان پیروی نکنید زیرا خود آنها آنچه میگویند نمی کنن. آنها بارهای سنگین را میبندند و بر دوش مردم می گذارن در حالی که خودشان حاضر نیستند برای بلند کردن آن بار حتی انگشت خود را تکان هر چه می کنن برای تظاهر و خودنمایی است دعاهای بسته شده به بازوی خود را قطورتر و دامن ردای خیش را پهتر می سازند آنها دوست دارند در صدر مجالس بنشینن و در کنیسه ها بهترین جا را داشته باشند و مردم در کوچه ها به آنها سلام نماین و آنها را استاد خطاب کنن. اما شما نباید استاد خوانده شبی زیرا شما یک استاد دارید و همه شما برادر هستید و هیچ کس را بر روی زمین پدر نخوانید زیرا شما یک پدر دارید یعنی همان پدر آسمانی. و نباید پیشوا خانده شوید زیرا شما یک پیشوا دارید که مسیح است. کسی در میان شما از همه بزرگتر است که خادم همه باشد. زیرا هر که خود را بزرگ سازد حقیر خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد به بزرگی خواهد رسید. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار، شما درهای پادشاهی آسمانی را بر روی مردم می بندید. خودتان وارد نمی شوید و دیگران را هم که می وارد شوند باز می دارید. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار، شما مال بیوه زنان را می بلید و حال آنکه مخص خود نمایی نماز خود را طول می دهید، به این جهت شما شدیدترین ترین کیفرها را خواهید دید. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار شما دریا و خشکی را طی میکنید تا کسی را پیدا کنی که دین شما را بپذیرد و وقتی که موفق شدید او را دو برابر بدتر از خودتان سزاوار جهنم میسازید. وای بر شما ای راهنمایان کور شما میگویید اگر کسی به معبد سوگند بخورد چیزی نیست اما اگر به طلاهای سو، معبد سوگند بخورد موظف است به سوگند خود وفا کند ای احمقان و ای کوران کدام مهمتر است طلا یا معبد که طلا را تقدیس کند شما میگویید هرگاه کسی به قربانگاه سوگند بخورد چیزی نیست اما اگر به هدایایی که در قربانگاه قرار دارد سوگند بخورد موظف است به آن عمل کند. ای کوران کدام مهمتر است هدایا یا قربانگاهی که هدایا را تقدیس می کند. کسی که به قربانگاه سوگن یاد می کند به آن و به هرچه روی آن است سوگند میخورد و کسی که به معبد سوگند میخورد به آن و به خدایی که در آن ساکن است سوگن خورده است. و هرگاه کسی به آسمان سوگن بخورد به تخت خدا و آن کسی که بر آن می نشیند سوگن خورده است. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار شما از نعنا و شوید و زیره دهیک می دهید اما مهمترین احکام شریعت را که ادالت و رحمت و صداقت هست نادیده گرفته اید. شما باید اینها را انجام دهید و در این حال از انجام سایر احکام قفلت نکنید، ای راهنمایان کور که پشه را صافی می و شطر را می بلید. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار، شما بیرون پیاله و بشقاب را پاک می کنید، در حالی که درون آن از ظلم و ناپرهیزی است. ای فریسی کور اول درون پیاله را پاک کن که در آن صورت بیرون آن هم پاک خواهد شد وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار شما مثل مقبرهای سفید شده ای هستید که ظاهر زیبا دارند اما داخل آنها پر از استخوان‌های مردگان و انواع کسافات است شما هم همینطور ظاهرا مردمانی درست کار ولی در باتن پر از ریاکاری و شرارت هستید. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار شما مقبرههای های پیغمبران را میسازید و بناهایی را که به یادبود مقدسین ساخته شده می میکنید و میگویید اگر ما در زمان پدران خود زنده بودیم هرگز با آنان در قتل پیامبران شرکت نمی کردیم به این ترتیب تصدیق میکنید که فرزندان کسانی هستید که پیغمبران را به قتل رسانیدند پس بروید و که که پدرانتان شروع کردند به اتمام رسانید ای ماران ای افیزادگان شما چگونه از مجازات دوزخ میگریزید به این جهت من انبیا و حکما و علما را برای شما میفرستم اما شما بعضی را میکشید و مصلوب میکنید و بعضی را هم در کنیسه هایتان تازیانه میزنید و شهر به شهر میرانید و از این جهت خون همه نیکمردان خدا که بر زمین ریخته شده بر گردن شما خواهد بود. از حابیل معصوم گرفته تا زکریا فرزند برخیا که او را در بین اندرون مقدس معبد و قربانگاه کشتید. در حقیقت به شما می گویم گناه تمام این کارها به گردن این نست خواهد بود. ای اورشلیم ای اورشلیم ای شهری که پیام بران را به قطع رسانیدی و رسولانی را که به نزد تو فرستاده شدن سنگسار کردی چه بسیار اوقاتی که آرزو می کردم مانند مرغی که جوجه های خود را به زیر پروبال خود جمع می کند فرزندان تو را به دور خود جمع کنم اما تو نخواستی! اکنون خانه شما متروک به شما واگذار خواهد شد و بدانید که دیگر هرگز مرا نخواهید دید تا روزی که بگویید مبارک است کسی که به نام خداوند میآید